انچه که دیده می شود در دنیای اسلام این است که به نام اسلام دشمنان اسلام در پوشش اسلام با اسلام مقابله می همان تعبیری که امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه فرمود اسلام امریکایی در مقابل اسلام ناب محمدی محمد اسلام و آمریکایی است که با تاقد میسازد با سهیونیس میسازد در خدمت هدفهای آمریکا قرار میگیرد ظاهرشم اسلام اسلام شاید بعضی از مراسم اسلامی رو انجام میدن اگرچه اونطوری که انسان میشنا این کسانی که به نام اسلام با شکل تعصب در برخی از کشورها اخیراً در عراق و قبلن در برخی جاهای دیگر ظهور و بروز پیدا کردن اونطوری که انسان میشنا خیلی هم پابند به احکام و شرایع دینی و وظائف دینی شخصی هم نیستند اونطوری که آدم میشنو به ما اطلاع خیلی دقیقی نداریم اما اونچه که مسلم است در جهت کلی قطعا 180 درجه در جهت مخالف اسلام حرکت میکنند اسلام همراهی با دشمنان دین را ولایت دشمنان دین را ولایت مستکبرین را جزء چیزهایی دانست است که مؤمن از آن باید بر کنار باشد الذین یا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت اگر شما با نام اسلام در راه طاغوت حرکت می‌کنید کشف بکنید که این اسلام اسلام درست حسابی نیست اسلام و واقعی نیست یک جای کار عیب دارد <تصفح> امروز این جوره، البته دست های دشمن را انسان میتوانه ببینه باید باور کرد که دست خبیص سرویس های امنیتی و جاسوسی رژیم های دشمن اسلام در ایجاد اینجور قضایه و اینجور بلواها برای مسلمان ها نقش حتمی دارن حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارن اونها هستن که دارن گردانی میکنن کما این که انسان مشاهده میکنه نشانه ها و تلائل اونها هم آشکاره اگر امت اسلامی با معارف قرآن اونس داشته باشد، بیشتر آشنا باشد، اینجور حوادث کمتر پیش میاد ارتباط و اتصال دلها به خدا مانع می شود از اینکه دلها قیانت کنند به راه خدا که امیدواریم این پیش بیاد